اشتا احمایی و اشتایی اشم با درود همه شما دانشجویان و دانش گرامی نخست ادمین گرامی به من یک آگاهی بدم که آیا آبای من در تارار شدیده میشه لطفا یک من را در برای من بزنید بعد سپاس کذارم من ادامه میدم یا تا میخونم براتون یکی دو بند به سرغاز بالاارم میخونم تا دوستان دیگر هم فرا برسم یا تا آوویریو تا توششا چیتاو ووش د دا مننگشیوت هنگه اوش مزدار شترم چا خبورایی هاییم دریگو بیو ددت واسدارم یانی منو یانی وچو یانی شیاوتنم هشونو نو زرتوش تراؤ، آمیشاؤ، سپنداو، گاتاو، گیورواو، این نماو، به گاتاو، مزداو توربیم سپنتحیال آشال بی سپنج شیاوت نا خرتم منعهو با خوشنوزی و با اندیشه و گفتار و کردار نیک و با درود به زبان و فروره هشوزرت سپنتمان شس بزرگ و عشور و ها و با درود به همه مردان و زنان نیک و دنیا و با درود به همه شما هم میهنان، هم فرهنگیان، هم زبانان، دوستاران و همه کسانی که چه اکنون در این تالا در این گمجه گرده اومدید و چه کسانی که از راه رادیوی زرتشتیان و از راه شبکه جهانی به این گفتان ها گوش میدید درود میگم به همه خوش اومدید امروز روز عدیبه اشته روز عشاوه اشته از ماه مه و سال سه هزار و هفتصد و پنجاه زر پشتی و یا هجده بودم که امروز از کجا آغاز کنیم و به کدام سو بریم به این نچه رسیدم که در پایان هفته گذشته در بخش پرسش پاسخ یکی از دوستان پرسیدن که حصول دین زرتاشتی چیا هست که البته من هم خب پاسخ دادم که ما هم داریم در مورد همینها سخن میگیم در این چند نشستی که داشتیم حالا یا این دوست ما حضور نداشتن نبودن در کراس های دیگر یا این که به هر روی گفتم یک بار دیگه یک هم تیتر به گذری بکنیم یک توضیح هم بدم به همه شنوانده های گرامی، باشندگان که البته در ممکنه به شیوه های گوناگون از سود کسان گوناگون این اصول به سوا بخش بندی شده باشه و گزارش شده باشه که منگامی که شاید در آغاز و در یک نگاه رونمایی و سطحی به نظر بیاد که اینا با هم گوناگون هستند یا چیزای مختلفی هستند ولی وقتی که به جرخاش بریم به عمقش بریم و درونش رو ببینیم ببینیم که به راستی همه همه یک چیز رو میگن فقط با واجههای های گوناگون با عبارات و فراس های گوناگون و تنگبندی های گوناگون اما با این همه برای که باز اینها رو به هم پیوند داده باشم یک گذری می کنم میخوام بخوام بپردازم به آنچه چه که در واقع به صورت رسمی و از سوی به برژه روز در ایران از سوی انجمن گرامی مبدان موبدان تهران ایران به عنوان اصول دین به صداع گفته میشه و در نوشته ها و کتاب ها و اینا میاد و من اونها رو اول تیتوار براتون میگم و بعد کتایی گذری ازش میکنم و بعد یه نگاه ای هم بهش میدازم و بدم که اینا یکی هستند اون نخ بنپایه و یا نخ اصل دین مزیاسی زرتشتی به این گونه بیان میشه یک بابد یکتایی خدا دو باور به پیامبری یا حالا پیام آوری عشوزت سه باور به جهان مینوی و باور به وحیشت مینو و اچیشت مینو چهار باور به قانونمندی عشق در هر دو جهان یا دو بخش از یک جهان این رو بعدا میپردازم ولی ما تنها یک جهان داریم ولی رویه های در این جهان هست یک روش آنچه که رسالا میبینیم اگر بخوایم بگیم بستار موز مادی هست و بهش گیتی میگرویند و گیتری و یا بخشی که مینو هست یا مینوی و مینو هم از منه میاد منه هم از اندیشه میاد حالا آنچه که در اندیشه میگذره برای انسان برای آنچه که دیده نمیشه اگه بخوای پنج باور به گوهر آدمیت یا انسانیت شش باور به امشاست بندان هفت باور به نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان باور به باعددست بودن که بهتر بگیم سپنتایی بودن چهار آخشیج آب و باد و خاک آتش و رایت کامل بهداشت زیست یا زیست بوم و سرانجام نه باور به کرد یا تازه کردن جهان که یک... اگه بخوام یه خوردم برم توی اینها بدون اینکه که بیشتر از این چون در این مورد ها بیشتر اینها ما گفتگوی کردیم در 60 داری پیش این. ولی خیلی مهم هستن ببیشه سه بخش نخستش از این جهت که اینها رو اشتباه نگیریم وقتی ما میگوییم باور به یک تایی خداوند که هستی بخشیست بزرگ دانا و در همه جا نمایان هست شاید به گونه دیگه از اون ما هم گفتم و میگم باور به یگانگی جهان هستی که اینها جدا نیستن هم. آن یک تای خداوندی آن اهورا مزدایی که ما در مزدی هستی میشناسیم با جهان در جهان است جهان دروست با هم یگانه هستند اگر بخواهیم بگیم در همه جان نمایان است آن است که از قدیم با واجگان حالا تازی بهش گفتن وحدت وجود به اون ما باورمندیم و باور داریم که از روز ارتوشت چنین میدید و چنین میگفت به هر روی آن یک تایی خداوند ما نباید به گونه اشتباه بگیریم با آن یگانه یا یک فرمانده بودن یا یک در واقع یک بزرگتر بودن و همه چی رو خلق کردن و به همه چی فرمان راندن و هر کار که خواستن با اون کردن و در یک جهان دیگری یا جای دیگری به سر بردن چنین نیست آنچه که ما نگاه می کنیم ما او ازدا و جهان با هم هستیم گانه هستیم، درون هم هستیم، ما درون مزدا هستیم مدا درون ماست. سپس باور به پیامبری شوز داشت. در این مورد هم گفته کردیم گفته خواهیم کرد باز هم اینجا باید بگوییم که چه ما ایشون رو با هر فرنامی که بنامیم پیامبر بگی، پیام آور بگیم پیام دار بگیم حتی هایی که دوست دارن بگن فیلسوف یا از این واجه به کار ببرند آن پاسخ که از من میپرسان من همیشه میگویم می اشوزرتوش آن, آن چیزیست که شما میخواهید و شما باور دارید مقدر هر چیز دیگه در واقع این قانونمندی باور به طور کلی اینجوری است که شما به هر که باور داشته باشین جهان براتون همون جوری میشه ولی میخوام اینجوری بگم که در مورد اشوزرتوش هر گرونی هم به ایشون نگاه کنین ایشون نمیتونه در جایگاهی باشه قرار بگیره که برخی از پیامبران در حضیان دیگر بدون گونه شناخته میشند یعنی به شکلی که بدون خواسته خیش و بدون دانش خیش برگزیده باشه شده باشه و این برگزیدگی حتی در برخی موارد ممکنه پیش از زاده شدن پیامبران پیش بینی شده باشه و و و که چنین در مدار نوشتوش ما چنین نمیبینیم ما چنین نمیاندیشیم و در گاته هایشون ایشون هم چنین دیده نمیشه ایشون پس از گذار از پرس شای فراوان و با اندیشگری و با ژرف اندیشی و از سرانجام از میشه گفت از راه درون اهورار دریافتند و از راه بیرون مزدار و به معنای اون اشار دریافتند و قانونمندی جهان دریافتند و از اون راه اهورار مزدار و از راه سروش دریافتند و این در واقع اون شیوه نگاه کلی در دین مازیاست دینی به بهیست یعنی این انسان هست که در در پرسش و پژوهش و جستجوی خیش میل به مزارش پس دختی که به آنجا رسید آنجا که به قول اشوزاتوس کاتا بوومان یا در واقع روشنی بوومان فرا گرفت آننگام در, در یافته می شود آننگام مزدا پیوند پیدا نکنند به هر روی ما ویشون چنین با مزده در پیوند شد و چنین خود رو از سوی او را مزدا به عنوان آموزگار به عنوان پیام رسان به عنوان پیام بر در یافت و پیام مزدار و پیام خرد رو پیام داد و دانش رو برای جهانیان آورد و بر برموان داشت. سپس اصل صرفم که گفتیم ازش باوره به جهان مینوی در گاته ها هنگامی که در یاسنای سی از در آغاز می کنه به گفتن پیامش آموزشاش، از اح... احوال نامی بره یعنی دو احو احو یعنی خب هستی بودن ولی باز به معنای باز میگم دو جهان جدا از هم نیستند در همین جهان یگانه که هستیم دو گونه از بودن ما میشناسیم یکی بودنی گیتوی یکی بودنی مینوی ف... که خب اگه بخوایم وارد اینهام بشیم خب داستان جداگانه دارد بستگی باز به اینکه هر کسی چگونه تا چه حد می‌خواد در این بره جلو خب کسی و کسانی هستند که این رو کاملا به صرف اگر بخوایم بگونیم اینجوری بگیم مادی می‌بینند یعنی اینکه اعات میوی هم از اونجا که از من می یاد به و من هم تا اونجا که میدونیم یعنی اندیشه یعنی این ذهنیه در ذهن امسان هاست آنچه که در ذهن ما می چه و به هم همینه یعنی ما هر چقدر بالا پایش کنیم می ببینیم آنچه که منو شما داریم با هم گفته می کنیم این از راه دستگاه اندیشه من میگذره و اندیش به اندیشه شما میرسه و از اندیشه شما میگذره و بنابراین یک گفتگوی اندیشه‌ای است گفتگوی ذهنی سطح دلگاز نیست اینکه در این جهان نادیدنی اگر بخوایم اسمش رو بذاریم آری در جهانی که دستکم به چشمان به, به قول باقیر مسلح دیدنی نیست از همه نیروهای گوناگونی که پیرامون ما وجود داره گرفته که خیلی‌ها رو به چشم نمی‌بینیم فقط ممکن آن اون چه ببینید برای اینا همه میتونه به بخش مینو و مینوی مربوط بشه که در ادامش مساله روان در واقع مطرح میشه و اینکه روان چیست باز بنابر میتونه بگم که باور هر کس باور, باور کسی روان یک یکی یگانه جداگانه از یگانی که از پس از مرگ به جا میمونه و بعد به هستی و زندگی به گونه ادامه میده به نظر برخی شاید دوباره شکله مادی هستیگی تبیه هستی به خودش بگیره از نظر برخی هم که در واقع نظر سنت زرتشتی جاودانگی روان هست یعنی روان به رفتن در جهان ماینوی و تکامل خودش ادامه بده تا تا به تا رسایی خودش برسه و به اورمزا یگانه بشه سپس در اصل پنجم در اینجا از باور به انسانیت سرکنی یعنی انسان پاک و اهورایی آفریده شده و از خرد و حجدان برخوردار هست و آزادی خدادادهی دارد در انتخاب راهش جلبته همجوری گفتیم و میدونیم خیشکاری هم دارد پاسخگو هست و مسئول هست چون آزاده است و انتخاب می کند بنابراین در برابر انتخابشن مسئول و برابر قانون نشاه هم پیامل خوب دریاف خواهد داشت و سپس این که خب برابری همه انسان ها از هر دیدگاه، هر دیدگاه جنسی، نجادی اینا همه در, در, در درون مفهوم و در اون این نگاه به جهان و این دین باور وجود داره یعنی اگر ما اینو میدانیم میبینیم حس میکنیم باور داریم که همه هستی با هم پیوند دارن یگانه است و هستی هر کسی به هستی دیگری بسته است از, از گیاه گرفته تا جانور انسان و همه نمونهای هستی دنابراین در میان ما انسان هم نمیتونیم قدید آفرینشی برتری از بر کسی یا کسان یا گروهی بر دنیا برتری داشته باشه البته این جای داره که به نظر من یک شاید نشستی و جلسی رو به این موضوعی بدیم از این دیدگاه که خب گفتن این بسیار ساده است خیلی هم ممکنه چه از دید ایدئولوژیکی و چه از دید حالا خودشون بگن بله همه انسان ها برابرند و یا زن و مرد برابرند و از حقوق برابر برخوردارند و و و خب شروبختانه میبینیم که در کمش و کردار خب چنین بسیاری چنین نمیشه چنین نمیتونن چرا چنین هست خب این رو از دیدگاه دانش و دیدگاه روانشناسی و خیلی چیز روی پرداخت ولی دست کم اینه که در است و در بلمایی آدم به این باور داشته باشه حالا اگر در زندگی شخصی هر کسی بنابر آموزش و پرورشی که هر کسی داره چقدر میتونه این رو به کنش من باشه اون داستان دیگه داره ولی به هر روی بهتر از این است که آدم از است باور به این نداشته باشه من ماننده هستند به هر دیدگاه های دیگری سیستم های باور دیگری که خود رو و گروه خود رو برتر از دیگران میدونند و در راهشان به هر صورتی میکوشن که اینو به سبوت برسوند بگذاریم اخت ششون که باوره به همشاه که خب همشاه رو یا فروزه های مزدای انسانی است نامشو میذارم که ای رو ما بهش پرداختیم از همون سپنتا مینو یا فروزه آفرینندگی آغاز کردیم و تا و اشاب و, و شهریور و سپندار مزد و خورداد و و همچنین سروش رو هم در این دست بندی گذاشتیم و ازش تعریفی و باز نمیدی داشتیم پس باوره به امشافت کردم هفته باوره به نیکوکاری و رسیه از نیازمندان آوردشت اگه اتا خب این دیگه اینم درونشه یعنی باز میگم هر انسان مسئولی، هر ذرتشتی، هر بهدینی که این،, این نگاهش به جهانتونین هست خود به خود خود و در برابر همه نمودهای دیگر هستی هم به گونهی مسئول میبیند و میخواهد که دیگران هم و دیگر نمودها هم از هستی خوبی برخوردار باشن تا خودش بتونه از هستی خوبی برخوردار باشه چرا ما خوشبختی خود رو میخواهیم در خوشبختی دیگران برویم؟ اگر خود ما جدایی از دیگران میرانستیم و بدانیم خب میریم فقط به قول برور سر خود رو داریم با سمین داستان دیگری است مانند نمونه پیشین که گفتم برای خیلی ممکنه این یک فقط یه شهار به نظر بیایی یه شهار باشه، یه آرنگ باشه خب برای هرکی از خودش رو در درجه بر نگاه میکنه به روی بعضی از خودیام، هم, هم میگم که اول تنی و سپس روانی البته این هم یک بازدیدگاه باز میگم روانشناسی بخوایم بهش نگاه کنیم بسیار جفت‌تر از اینها است یعنی به هر روی اول انسان باید بتونه خودش سرپا باشد تا به دیگران هم بتواند کمک کند این داستان دیگری است ولی به هر روی این نیکوکاری در هر زمینه است. فقط در زمینه به قول معروف به نادار کمک کردن یا به فقیل کمک کردن ما ناداری رو باید از بین ببریم نادانی رو باید از بند ببریم اگر یک جایی نیازمندی هستیم که به ناداری هم کمک کنیم مسئله است. ولی باید نادانی از بین بره. ناداری از بین بره. از راه های کن از همین روز که همیشه زرداشتیان از در طول تاریخ در هر جا که بودن و هستند برای نمونه آموزش و برورش برشون خیلی مهمه درستان و دویرستان اینها بناها کردن و می کنند بهداش و رسیدگی به بیماری و بیمارن خیلی مهمه هست بیمارستان بناها می کنند و هر جا که بشه کمک کرد و این فقط در انسان نیست باز میگن جانبران رو تیمار کردن بهشون رسیدن مانند هر جاندار دیگری آفاید شروطنی که او رای باشون رفتار کردند. گیاهان بنابراین این نیکوکاری در, در بردارنده همه این بخش بشه خب در همین پیوند باوره به ستنت های بودن چه آخشیش بله آب و باده آتش و خاک دیگه کیه که امروز ندونه که ما همه از اینها درستید همه هستیداران از این چهارتا به همون قدم هر شکلیش که حالا نگاه کنید بلمایش همینه بنابراین خب بیگمان آدود کردن اینها خب آدود کردن خود ما هست دیگه این کودکانه است که ما اگه نتونیم ببینیم که چه بونه وقتی ما زیستبوم اون رو حالوده میکنیم این دیریازود به خودمون باز نمیگرده شروع وقتانه میگم این هم باز میتونه یک آرنگ باشه یک شعار باشه و دکنش چه باشه ولی بسیار اصلا چنین نمیبینن اصلا توی دیرگاه ایدالوجیگیشون چنین چیزی نیست توی ها بینیشون چنین چیزی نیست و خب بیگمان جوری هم نگاه نمی‌کنند و به اینجوری هم نیست. پس ما این را میبینیم و تمام می با دید بیرون و با دید درون این را میبینیم میفهمین امروز هم که دیگه این همه سخن از تمام این دگرگونی هایی که در آب و هوای جهان به وجود اومد و میاد و مساعد دیگر که هممونم گباهش هستیم به گونه ای بخش بزرگیش پیوند داره با همین آرودی که زیستون می‌دونید. و سرانجام نکم که باور به فرش کرد یا تازه شدن و تازه کردن جهان. که این رو می‌گذارم و از ادمین گرامی خواستم اگر آمادگی دارند. ما یک موزیک زیبایی مهمان بکنند تا ما دوباره بازگردیم های امکان وجود داره تونم؟ این بار سرمست آمدم تا جام و ساغر بشکنم ساغی و مطرب هر دو را من کاسه یه سر بشکنم از کف اصا چون بفکنم فرعون را آجس کنم امروز سرمست آمدم تا دی را ویران کنم گرز فریدونی کشم زهاک را سر بشکنم گر به سویم بنگرد گوش فلک را و برکنم گر طعنه بر حالم زند دندان اختر بشکنم گر رو به معراج جاگرم از هفت کشور بگذرم من مرغ عالی همتم از آشیانه برپرم تا کرکسان چرخ را هم بال و هم پر بشکنم من طائره فرخوندم در کنج حب افتادم دادم باشد که روزی بارهم روزی قفص را بشکنم زیبا, بسیار زیبا تازر تشتی ببینیم سپاس خوزارم بسیار تشتی می گوید اچا توی و این خیاما یوی ایم فرشم کرناون اهو بیاییم از کسانی شدیم که این زندگانی را تازه بگنیم یعنی چی؟ چگونه میشه زندگانی رو تازه کرد؟ نخواست به این باز می‌گردم که یکی از اصولی که گفتم در اصل جهان بینی ما هست و دیدگاه هستی شناسانه آن است که همه چیز در حال دگرگونی همشگیست است اصل سپنتا مینو اصل جنبش اصل یکانگی در درون یگانگی یعنی که همه چیز در حال تغییرات همیشه گیست خب پس ما نمیتونیم ریچی کسی نمیتونه جبای تغییرات رو بگیره اصلا ایستادگی ایستایی یعنی در واقع پایان هستی. پس باید رفت میتونم میگم چاره ای نیست برای ای که عشا چنین است. خب حالا درون این برای این فقط اگه ما به دگرگونی نگاه کنیم دگرگونی تغییرات میتونه هر راستایی داشته باشه هر جدید داشته باشه حتما نباید به اول معروف به پیش بره حالا این داستان به پیش و به پس رو به گونه ای مفهوم زمان درش میاد خب ما روش میذاریم به خاطری که ما با تغییرات همراهی ما حس میکنیم ما سن, سن و ساله میره بالا و, و و زمان رو به گونه ای درانش میاریم حالا پرسش زمان پرسش دیگری است ولی تغییرات پس وجود دارند حالا از سوی دیگر ما در اشها میبینیم که در در طبیعت همه چیز یک سیغ فکاملی رو میپیماید از دانه از دانه اولیه آغاز میکنه تا برسه به در واقع بار و بر و به به قول محلوش به تخمه بشینه و بعد از اون یک زندگی تازه در واقع زاده مشی برابری این سیکل هستی این دایره وجود دایره هستی در هم دایره ایست و هم خطی یعنی اینکه در کناری ای که پیشروی داره دایره ای هم هست سیکتی هم هست خب حالا انسان میاد در این میان ما گفتیم که باید با آشا هماهنگ باشیم اگر میخواهیم که به درستی زندگی کنیم، من این تغییرات رو میفهمیم، تغییرات رو در میآبیم و باش همه آیند. ولی این هماهنگی در واقع برای ما فقط این نیست که باشیم، خب. ما میخواهیم که بتونیم انجام بدیم یعنی میخوام بگم که یک زرتشتی که برای پویایی، نوگردانی پیش برد، پیشرفت، تا تازه شده هم که این فروهر که گفتم فروهر نشانه پیشرفته است که در همه ما هست و اون چیزی نیرویی است که ما رو به تکاپو میندازه بهمون امید میده راه رو بهمون میخواد نشون بده پیش رو میخواد روشن کنه حالا چرا نمیبینیم مسائل دیگری است ولی به هر حال به هر حال ما باید بتونیم پیشرو باشیم خب جهان رو کسانی تغییر میدند که خود پیشرو باشند حالا این پیش به این معنی نیست که بس همه با بدو بدو فکر کنیم که همه ما هر کدوم ما حالت هر کس در زندگی خودش یک راهبر است یک راخنماست ولی هر کسی هم گفتم در جایگاه خودش ولی هر کسی در جا و جایگاه خودش میتونه در این پیشبرد پیشرفت که منوانی شهید بشه و وقتی پیشرفت میگیم خود به خود یک یک چیز مثبت بشه یعنی باید برای بهبود بخشیدن باشه بهبود یعنی چی یعنی که زندگی رو بهتر بکنه باز چه برای انسان و چه برای هستی‌داران دیگه پس یه چیز مثبت دوشه. یه چیز پیش‌برنده باشه حالا به هر شکلی بهش نگاه کنیم شما از انسان رو نگاه کنید که حالا میگیم از باهات نشینی رسیدیم و برای خودمون در خانه های آنچنان روز نگی می کنیم و حالا بگذاریم که در این آپارتمان ها نشستیم و از زمین آرمیتیمون جدا شدیم و هی دورتر دورتر شدیم خب این مساعده اگه بشه حالا بگذاریمش کنار ولی به هر رو یک نوع پیشرفتیم ما کردیم دست کم از دید ابزاری از کهای ثروتمند یا تکنیکی حالا این که از کاهه اندیشه پیشرفت کردیم یا نه اینو دیگه همه میدونیم که تقریبا وقتا هم پس زرف کردیم فرطی ما نگاه میکنیم از جمله انسانی که در چه از آغاز پیشرفت زندگی می کرد چند دیشه ای داشت و خیلی ها امروز چند اندیشه ای دارن. پس می بینیم که در این جهان اندیشه این گونه دیگه ای است که بخوایم بگیم تا جهان ماتی. خب ما دانشمون بسیار رفتون شده هرچند که این دانش رو هم از اون زمان هم میدارستن که این بهانگی در درونه یگانگی و این یگانگی وجود داره. حالا ما از راه شکافتن اطهم رو نمیدونم و این ها بهش برسیم خب در حال این هم یه جور پیشرفت هستش بنابراین این, این تازه گردانی به همه اینها مربوط میشه تازه گردانی سیر داره سیر به سوی بهتر شدن داره و اینکه انسان به طور کلی با امید زنده است امیدی به اینکه که به هر روی یک یک چیز دیگری به دست بیاره و این چیز حتما مادی نیست حتما برای خودشم نباید باشه میتونه یک چیز جایی تو بیانوزه میتونه یک آفرینش به وجود بیاره که ما همه آفریننده هر کس، هر کسی به شیوه خودش یکی در درسش یکی در کارش یکی یک کتاب مینویسه یکی یکی نوآوری میکنه یه اخترای میکنهیه سوودمندی می نویسه یکی میره بر رو درست میکنه یکی میره ماشین رو درست میکنه و و اینا همه مظاهر گوناگون نممنت های گوناگون فراش و نوآوری هستند من میتونم بگم که برای اینکه انسان بتونه در زندگی خودش حالا چه شخصی و اجتماعیش اگه به مثلا نو و تازه شدن نگاه کنیم ما در چهار جهت در چهار راستا و در چه به گوناگون گوناگوون زندگیون میتونیم این نو آوری رو و نو گرایی رو باهاش همراه باشیم و ببینیم یکی در بخش تنی ما هست فیزیکیمون خب میتونیم با خوراک های سودپند با ورزش با آسایش و اینها تن خود رو به هر روز تا زمانی که طبیعت اجازه میده به پروریم و تواناییمونو بیشتر کنیم من نظر فیزیکی در اندازه های خودمون سپس در بخش است. روان رو با اندیشه با اندیشه با با میگری، با موسیقی با خنر به طور کدی و با نیایش کسایی که دوست دارن خدمت به دیگران به با نزدیک بودن و یگانه بودن با زیست با طبیعت همه اینها به تازه نگه داشتن ما نظر روانی و خود نوگردانیمون ماشت پس ما تنیر داشتیم و روانی و سوم اندیشه‌ای در بخش اندیشه‌مون یعنی فکرمون رو اندیشه‌مون رو نیرورسانیک کنیم با خواندن با نوشتن با یاد گرفتن با آموزش دیدن آموزش دادن اینا همه تمریناتی هستند برای بخش اندیشه‌ای ما و سپس در بخش ازمانی در بخش اجتماعی و در بخش حرفه با باز با دیگر انسان ها و دیگر نمودهای هستی در پیوند های گروهی اجتماعی، کارهای اجتماعی، کارهای سودمندی که به صورت گروهی انجام میدیم. بعد جمعی گروهی که به هر حال هر کدوممون هممون هم چالش داریم. هیچ کسی تنها نمیتونه و اونورا کسی هیچ وقت هیچگاه تنها نباشه ولی به هر روی این گروه هایی که باش هستیم چه گروه های کچکتر و چه گروه های بزرگتر این هم به بونه در اون نوع گردانی ما همیشه کار برن پس بنابراین خودمون رو اینجوری در زندگی در واقع نیومنتر میکنیم تا بر چالش های بنابون زندگی دلاغه پیروز بشیم و به سمت پیش بریم خب این هم به گونه در مورد تازه یادانی. و وقتی از فراوهر گفته بود کردیم من یه بخشی رو هم نادیده ناتمام گذاشتم و به فراوهر به گونه دیگه نگاه می کنم به صورت بخشای گناه گونه انسان باز هم پیش از اینکه به اون از چون از اصول ما صحبت کردیم و من گفتم که هر کسی به گونه ای اینکه نشون بده و اون نه پس رو گفتم و اینکه همه چی در جا میگیره ما همون رو گرامی میذاریم به شیوه دیگری هم که من نگاهش میکنم میتونم به این صورت براتون بگم که این دیدگاه هم اه هم اه هم زیباست هم خوب است و هم که در همه جا میشه این رو دید میتونم اینجوری بگم که بنیان پیدایش جهان و هستی رو اگه بخوام بگیم یا اینکه همه چی اینجوری کار میکنه. همه چی درشون یک یگانگی هست همون یکتایی اصل اول یک یکتایی دوم دو دوتایی دو دوگانگی دوگانگی درون یگانگی که گفتن این دوگانگی یعنی جنبش یعنی دگرگونی خوب. پس این که اینکه همه که یگانه است در اون این یگانگی جنبش وجود داره به همشگی بوجود وجود داره. سوم همه اینا بر اساس یک کانون مندی هست، سامان و همجاریک هست که اون عشاب باشه یه گفته بود کردیم و چهارم در, در این سامان خرد وجود داره دانش وجود داره، منش نگه وجود داره، یه همون حق منایی همین چهار تا رو اگه نگاه کنیم، که بعد البته پیامت اینا که گفتم هشترا و در واقع سپندار میتی و آروتات و امرتات خورده در موردات اینا پیامت ها اینا هستند. ما هر چیزی تو جهان نگاه کنیم اگر بخواد درست به قول معروف عمل بکنه و درست با جهان ما سازگار باشه این چهارت ها باید درش باشه یگانگی یا یگانگی وقتی ما میگیم پیوند یا پیوند رو هم با همون مهر ما میتونیم عنوان بکنیم مهره که همه چی رو به هم میچسبونه مهره که مایه پیوندگار جان و جهان هستش پس همه چی با مهر باید باشه و در اون این مهر جنب و جوش و دگرگونی و پیشرفت است و قانون مندی داره و خرد و جانش توشه پس این چهارتا قانون، مهر، جنبش و خرد رو نمیشه از هم جدا که قانون و دادی که درون ماش مهر نباشه به درد نمیخوره اون شهریاری که بر خرط استوار نباشه باز خوب نیست اون سامان و هنجاری که درش جنبش نباشه به سازندگی و آبادانی نمی بنابراین از هر جهت نگاه کنی این چارتا باید درش باشه قانون مهر بهش بشتران ها و برای که این بخش اصول رو تکمیل بکنم و به گونه دیگه این رو به پایان برسونم به غیر از این بخش بقول ما پایه های اصلی یا ها همشاستندان باز از اون چیزهای دیگه رو نام میبرم و ازش میگوام گفتیم آزادی اندیشه و گزینش در انسان پس در دین بهی انسان آزاد است انسان آزاده است, انسان است که خودش با این اختیار است نه دینه زور خب و چون آزاده هست پاسخ است هست است برای ما خود اهورا مزده هم پرسش پذیه هست چه برستیم؟ ما انسان هم. بنابراین باید بتونیم پاسخگو باشیم و این خود ما هستیم که نجات دهنده و رهایی بخش خودمون و جهان هستیم و باید باشیم مسئولیت به ما برمیدیده. نه میره تو آسمون ها نه میره به آینده دوری که معلومیست چگونه و قرار بیاد اینا همش به خودمون برمیگره پس مسئولیت خودمونو امروز باید بپذیریم و آنچه که امروز میکنیم به آمدش رو فردا ما خواهید دید همجه هم تقدیر و سرنوشت جایی ندارد اختیار است انتخاب است ما سرنوشت رو میسازیم ما تقدیر رو میسازیم تقدیر ما رو نمیسازد جایگاه انسان ارزشمنده است حقوق بشر، هودهای مردمی. باست هم که گفتم؟ مردم از هر رنگ و نژاد و جنسیت و ملیت و حتی دینی که باشن از یک سرشتیم. ما همه از یک سرشت اهورایی از یک هویت اهورایی داریم. ذاتمون اهورایی است. و برتری هر کسی بر دیگری تنها گفتیم در نیک‌تر بودن اندیشه و کردارش. برابری زنمت. خب اینا بارها بارها گفتیم و باید بگیم و باید بهش عمل کنیم نه تنها بگیم. زن و مرد حقوق برابر دارن. همه انسان ها حقوق برابر دارن و باید از امکانات برابر برخوردار بشن. حالا اگر نظر جسمانی و فیزیکی با هم فرق باشیم، اون داستان است که اونم البته مال همه نیست. بسیاری از مردان هم مثلا که از دید و فیزیکی بسیار ناتوان‌تر از بسیاری بانوان هستند. مثلا به این کاربرد پس پاناولین اسو برابر برقرار در جامعه زرتشتی جامعه خشترایی است. و هو خشترا و ایریو سامانه خواسته شده خوب یا گزینش خوب. پس هم سامان باید باشد، هم گزینش باید شده باشد از مردم و هم نیک به معنای اینکه برای جامعه باید سازنده باشد و نیک باشد. سازمان اجتماعی زرتشتی سازمانی است که بر مبنای توی نایش های ازجم سروشوار هم میبینیم که از خانواده آغاز میشه از کوی و برزن میگذره به شهر میسه به کشور میسه و جهان و این جهان باید از راه مهر و خرد با هم یه باره بشه هاشتی و دوستی. ما به دنبال جنگ نیستیم اصلا برای چی جنگ دشمنی برای چی اگر هستند کسانی که ما رو بشمن بینن مشکل اوناست که البته مشکل ما هم میشه ولی خب ما در برابر نادانی باید بیستیم در برابر خش باید بیستیم اون چاره نیست بر برابر اندیشای احریمانی باید اصداد خب این هم جزبه خیشگاری ماست کار کوشش ما به دنبال کار کوشش بهسازانه و مفید باید باشیم تنبری، بیاری، گدایی، درویشی، ریاضت اینها هیچ وقت چیزهای شایسته‌ای نبوده در جامعه زرطانی بنابراین هر کسی باید به دنبال کار کوشش مفید باشه. تا خودش رو بسازه خانوادهش رو بسازه جامعهش رو بسازه جهان رو بسازه و پاک نگهداشتان زیسبون که ازش گفتیم آخشیچا همه گیتی و زیستپون ما آیا درست نگهداشت نگرش داریم پاک نگرش داریم تا خودمون هم درست و پاک بمانیم و حالا آتش رو هم اگر به گونه ما به این بی به این که آتش ما چه نگاهی بشتاریم خب اون هم سخن جداگانه است آتش نماد اون همون چار فروزه که بهتون گفتم، یعنی نه یگانگی جمعش برای گرگونی آتش نیروی درون چیز هاست هنجار و قانون مندی. خرد و یا به بیان دیگر اینا آتش نهفته در هستی هستند آتش هم از زندگانی نشان داره هم از خردی که نگاهبان زندگی هست آتش همه رو گرد, خ... گرد خودش میاره، به هم پیوند میده به جمعش میندازه. نور آتش هم که بهترین نماد روشنایی درون هست و گرما و، روشنی هم که ازش میاد در حال زندگی رو به پیش میبره و این رو دیگه همه میدونیم آتش به گونه ای نقش پرچم و درفش رو برای ما بهنینان داره با تمام این مفاهمی که برای تو بکنم خب مفاهم میکنم دیگه آن چی که از اصول بود به گونه ای به های گوناگون گفتیم ولی باس هم همیشه جای سخن داره جای اندیشه داره و به گونه های گناگون هم درمانش سخن گفته خواهد شد خب خواه دوستان پیش از این که به بخش پرتوشوف ها سخ بپردازیم پردازین با نیم ساعت دیگر گذشت خواهش که اگر میشه یک سروده دیگری هم ما را مهمان کنید من میکرو یا گویا را را ها میکنم تا بتونیم یک موسیقی دیگری بشنویم و بباره خدمت بر برمیگرم سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخوان سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخوان و در بلوغ خرد یادی از عوستا کن بیا و زند بخوان تا سپیده بازر تو, تو بیا زند بخون تا سپیده بازد پوشت شکوه جلوی خوشید را تماشا کن بگو بگو که نیک بیندی شد نیکن گفتا شنید شد هم کردار شکر مزدا کن. بیا به عشق نیاخا که سرفراز کهن پیام پاک شرف را به یه معنا کن بگو که ملت ما سرفراز تاریخ است دشمنان وطن را خفیف و رسو عز از و شرف را به خانز و رمز و راز شرفنامه را و کن نبست دست تو را فتنهای چرخ بلند مقام خیش در اوج پماس پیدا کن نبست دست تو را فتنهای چرخ بلند مقام خیش در اوج خماس پیدا کن بیاهو پهنه این خطه خدایی را برای جشن خرم پیشگان محجد. از خون سیاهوش برامد زهاج بیا به حرمت دل حل این معما کن تو قطره منم قطره و وطن دریا بیا و قطره جان را نصار دریا کن به شوق دیدن فردای عشق و, و آزادی به نور دانش امروز فکر فردا کو، امید میچکد از ابر اتحاد بیا امید میچکد از ابر اتحاد بیا و بوست امید و تن امید می از بیا و بیانستان و و بوستان دوباره, دوباره دوباره احیاء مرده دوباره اونوارم که اکنون دیگه صدای من بیاد خب خوش اومدید دوستان به بخش پرسش پاسخ میرسیم و گفتم که تلاشی می‌کنیم تا بتونیم به این پرسشان به گناهی پاسخ داریم که همه خوش باشند پرسشون خوص بدین گونه نوشته شده که شنیدم که دو درصد انسان ها سالم و هیچده درصد انسان ها مریض و هشتاد درصد انسان ها نرمال هستند و در آثار آمده است که ظرفیت و گنجایش انسان ها در دینداری و دانشورزی متفاوت و متغیر هست و این که خداوند هیچ نفسی را بیش از توان خیش مکلف و مسئول نمی فرماید به امید چیرگی نور بر تاریکی و بر ظلم و آزادی بر استداد و وجدان بر قصابت و امید بر بنبست و علم بر جلب و محبت بر نفرت خب از بخش دومش آغاز کنم که خب بسیار زیبا ما هم همین داره رو ما میخواییم داد بر بیداد پیروز بشه و همون که شما گفتید حالا با باجگان فارسی اگر نیوشتیم بهتر بود بسیار زیبا خب ما همین هم چرا که نه دانش بر بیدانشی و, بیدانشی و بیدان نادانی مهر بر نفرت و دشمنی و همه این ها بشه و این با ما هستونه و این که خداوند هر کسی رو به اندازه توان خودش مکردقا مسئول میکنه خب آری آره دیدگاه میگم خداشناسی هر کسی چکنه باشه ولی بیگمان بی هر کسی به اندازه توانایی خودش میتونه باشه خب ما هم شه رو تکرار میکنن بشی باگوناگونی که هر کسی در اندازه های خودش و در جایگاه خودش خودش یعنی اونجا که هست در اندازهایی که میتونه هر کسی هم بخواد بیشتر از اندازه های خودش خود رو وزن بلند کنه خب نمیتونونه زیرش میمونونه و هم خودش رو از بین میبره و هم کار مثبتی انجام نداده اینه که هر کسی هم در اندازه های خودش. و اینکه هشت درصد انسانان هستند، حالا شاید دیگه ش... دیگه شما گفتید ولی یادم نیادش که یکی از این اا بسیار روانشناسان ایرانی حالا نام نمیبریم یک بار در این شهر ما بودن و سخنرانی داشتند و ایشون وارون این شما میفرمودن که 80 درصد انسان ها نرمال نیستند آنورمال هستند بیشتر از از انسان‌های نرمال هستند پس منظورشون از دلگاه این بود که مثلا روان درستی کامل اگه بخوام بگم و در جهانی که به هر حال فشارها زیاده مسائل زیاده و تنشها و و و اینه که تأثیرات زیادی رو همه انسانها میذاره. ولی به هر, رو... به هر کس در اندازه خودش هر کس یک گامی در هر روز بتونه یک کار نیک به قول من برای ما می گفتن یک کار نیک بکنه یک گام فیشورداره خب همین این ها رو هم جنگگری جمع کنین و رتا رت در یاشت دوست پرسیدند نظر من رو در مورد رمز و راز یا تأثیر اعدادی همچون سه هفت یا نه را جویا بشم از دیگاه جهانبینی رو زرد داشته از دیدگاه جهان بینی زرتشتی دوست من اعداد با هم هیچ فرقی ندارم حالا اینکه یعنی وقتی شما میپرسید از دیدگاه جهان بینی زرتشتی یعنی حالا در به گونه ای اگر از دیدگاه اشو زرتوش بخوایم آواص کنیم باات‌ها آواص کنیم خب بیجران در اون چنین چیزایی نیست اگر بعد بعد بیام در به طور کلی در این چند هزار ساله که تاریخ ما داشته و در بخش بزرگیشم جهان بینی زرتشتی به عنوان جهان بینی فراگیر بوده خب ممکنه در این مورد خب اندیشه هایی شده چیزهایی نوشته شده که من اون نیستم یعنی اگرم موقعی داشته باشم در اینجا جای اون نیست که در اون موردها سخن گفتونند که جهان بینی زرتشتی بیرون میره و پیوندی با هم نداره دوست دیگری پرسیدند آیا فراشو یا به گونهی که کسانی تعریف میکنند همان رستاخیز میباشد یا نوکردن کردن جهان هستید خب این رو به گونهی باقی کشم سخن گفتیم ببینید من اینجوری نگاه میکنم تنها من باز برمیگردم به اشوزرتش و باتاها که در اونجا سخنی از پایان جهان به مانای یک پی یک رویداد ویژه یا یک پدیده ویژهی نیست و همون که از سوشیانس ها یا سودرسانان به خیلی همگانی گفتگوه هست و هر کسی که بتونه گام درست و محصه در جهت بهبود وزه هستیداران برداره خب یک سوشییا سای سوودستان به شمار میاد همینجور هم محکوم فرشو کرد مفهوم همیشه لیست و مفهوم آخر جهانی نداره. در دیدگاه های 5 در بخشهایی از کتب قدیمی خب عاری سخن از این چیزها رفته از رستاخیز و اینها حتی در زمان‌های خودمون هم کنون، ممکنه برخی از به سرا دانایان دینی اگه اسمشو بذاریم خب به گونه هم سخن بگن رستاخیز رو هم به عنوان نوع شدن پایان جهان بکنه ای سخن بگن در از دین کرد و ابستا همین ها آمده که من به اونا نمی پردازم گفتم من نگاهم نگاه گاتا است و اون رو اصول اصل و اصول میم. و بعد اگر همجور که میدانیم و یاد گرفتیم و باورداریم داریم بشت بکنیم دیدگاه دانشی هم نگاه کنیم و این که فرش کرد همیشه گیست و این که در قانون مندی اشها و هستی وجود داره که هر دگر، دگرگونی های برادر علیم گفتند دیگر های کمی برای از این مدتی کیفی میشه یعنی این که آروم آروم وقتی یه چیز تغییر میکنه بعد یکباره یه یک چیز جدید ازش ظاهریده میشه خب این جهان ما اگر به زمین نگاه کنیم، به زمین خاکی داری زندگی میکنیم هر اتفاقی براش ممکنه بیفته این هم هم چیزها در موردش گفتن ممکنه کمی کم... چی میگن؟ یک سیاره دیگری از این ستاره‌های دنباله‌دار بیاد و بخوره زندگیه همه ما بگونه تموم شه یا نه میدون ها سال دیگه همینجوری زندگی به پیش بریم شک های گوناگونی حالا انسان باز به چه شک و چه گونه ای در میاد خب ما که نیستیم تا اون موقع ببینیم یا اگر باوری باشه که دوباره به شکل دیگری یه جایی دیگر از این هستی سر در میاریم شاید بتونیم گواهه اونم باشیم ولی نجانم رستاخیز به اون محنای که هاا مورد ها زنده می شنامین و, و فران میشه و بهمان میشه. دست کم من نگاهی ندارم و اش رو زر نگاهی نداشت پرسش بعدی میخواستم بپرسم که لوازمی که در هنگام سرایش سرایش یسنا روبروی موبد زود قرار میگیرد چیست؟ و هر یک چه منفهومی دارم البته خواهم که احتمالا برای گرفتن اصاره هم هست ولی آن وسیله پایه با سر حلق که میدهی دیگری از میانه ها نمیدانن را, را نمیداند چیز خب برای کسانی که اینا دیدن کسانی که ندیدن خب نمیداند شما چه سخن میگید ولی این سرایش یسنا یسنا خانی یشتن هر روی یه بخشی از سنت های دینیست بخشی از آین های دینیست که نوبه میخواند نوبت دستی میخواند و آری. اون چیزهایی که روی اون بسیارا سفره پیش رویشون هست خب حاوات جای خود داره آن که شما می برسم یا برسم هست یعنی آن چیزی که این برسم ها امروز به صورت نیده های میشه گفتش که فلزی هست با که فرزی ولی قدیما هست چوب بوده چوب درخت های ریجه ایماننده درخت های جهز رو گشتباه نکنند که بهش میگفتن برسون بعد این پایه‌ای که به هست این برسونوار روش می‌ذارن بهش میگن ماهرو چون شبیه حلقه گردی ماه هست که این برسونوار می‌ذاره برسون به طور کردی در آینهای پدران ما نشان و نماد به هم پیوستگی بود و اینکه این, این شاخه‌ها کنار هم بذارن و به هم پیوند بدن و این پیوند مسائل اجتماعی یا پیوند دینی رو میرسونه واژه ری، ریلیژن که از بورماگی religio و این هم به معنای به برصاب است یعنی پیوند دهی پیوند ها در یک باور و یک دین این هم از اونجا نزد این سامنگر گرامی پرسش ها تموم شد و ببینیم که دوست دیگر ما یا پرسشی یا دوستان دارند که تنها میبینم که پر حال اگه اشتباه نکنم بانوی گرامی به نام نوشین هستند اگه اشتباه نکنم در میان شنوندگان که در مورد زن و مرد به گونه گفتن یا یعنی که ایشون برحال اینه درست فهمیدن خب پشاریم که درست فهمیدن <تصفيق> و اینکه که احتمالا یکیشو ما نکنم در مورد زن وقتی گفت بکنم میکردیم که از نظر توانایی یک سانگیست یا من گفتم هستن که وقتا وارون اون هم هست برحال امدواریم ایشون از اون بانوان نیرومند ایرانی باشند که بتونم مردان ناتوان مثل بنده رو هم برها کمک کنن که به گونه اینا بتونیم زندگی درستی داشته باشیم سفاسگذارم از شما و همه شیرزنان ایرانی ببینم که دیگه ظاهرن پرسش دیگری خب نیامده و اگر هم دیگر پرسشی نیست خب ما هم دیگران یک ساعت و تقریبا 20 دقیقه است که داریم گفتگو کنیم سپاسگزارم از شما که تا این گانه دیگه گانه با روشت با من بودید در کلاس بودید و ها که از راه رادیو شنیدن و یا خواهند شنید به جودی میگم به همتون و شب خوب خوش روزهای خوب خوش براتون آرزو دارم اجازه بدین ببینم که تازه دیگری این که آمد پرسشی که فرستاده شده بدین این گونه است سطح پوش شده باشد کافی است آیا نوبت گواهگیران را در این شرایط را می کنند؟ این پرسش ای که از دوستان بهترین ما استفاس بذارم آکه خب پرسش از که گرفتن و روی اه... من پرسش درست البته مدویدی نشدم که آیا صده شدن کافیه خب گواهگیران که البته ما میکنیم برای هم زرتشتیان و هم برای کسانی که شاید خب خبصده پوش نشدند ولی میخواهند ایرانی باشند و میخواهند به شیوه زرتشتی ایرانی ازدواج کنند خب میتونم بگم که از یک سو خوشبختانه گفتم در این سالیان گذشته افسون شده شما را دوستان و هم تا اونجا که بتونیم به خواسته های ایندوستان ها رسیدگی خواهم بگم. سپاسم از آلی آماز که همواره در حال پرمن و همه ایمان میهد خب دوستان پس دیگه از قرار دیگه چیزی نیست بنابراین من دیگه شب خوش بتون میگم و به اول آمازده خداوند جمان و خلد و میگم که تا یک مزدا است به جهان است مزدا به جهان است خوب خوش باشید بدرود تا درود دیگر شکر